بسم الله الشيطان ا بعش بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله واعده طيبين الطاهرين المعصوم فان شاء على ما شاء الله اللهم اشفع لنا في الشدائد يا رحمتك ا ش به مناسبتی که بحث خوبیت زواهر توش آمن مرموزا متعرض اقسام دلاله در کلام کنم اسم اول رو مدرول تصدباری قرار دادن که از خریم مرموزی بخون مطالعه کنم اما جلد اول محاضرات خود ایشان اون بحث ورز رو در اونجا دارن و اقراض رو شده شدن و همچنین کلمات دیگران بسایی که بعد از ایشان کتاب و حسیب رو نوشتن و بحث ورز و اقوالی که در این مسئله هست از کلی مبنای خود ایشان مسئله تعهده و توضیحاتی رو در روز راجع به انواع مسالکی که در اینجا هست افته شد اجمالا قدود نه مسلک رو بیان کردیم که یک مسلک ایشان که عدم رفت این رفت روشه و خشت مسلک دیگه وجود یک رفت باشه به توزیه ها دیگه گذاشته این رفت رو اگر با اضافه مقانی کسانی که واضح و خدا میدونم رفت به اصطلاح موزی ها ورز و الهی میزونن اضافه کنیم مجموعا در مسئله میشه راجب این که کدوم مسئله رو سموی توضیحاتی عرض کردیم جاشم اونجا میسه فقط خیلی اشاره سریع و اندازه اشاره و خلاصه خیلی مختصر بخصه بشه به نظر ما میاد این مسئله که بیشتر تفسیر امغادی یعنی یک تفسیری یک ترفیز است. مسئله بس خیلی روشن نمیاد برگرمون یعنی به خاطر اینکه اون قدرتی که انسان داره و خلاقیتی که انسان داره محدود کردن و او بیه که از این تقاسی روشن نیست مثلا همین انگیزه های شده, شده که دیروز سعودش رو ارس این اینه که در حیوان هم موجوده و دیروز سعودش رو ارس یعنی اشاره کردم اون خواهده برس در کلمات مسعودی سفیع مسئله اخلاق رو و اصول و تقدیر رو به مکانی برگردوند که همین انگیزه‌های شرعی شده, شده است و بعضی‌ها از یک جایی که من به چند واسطه گفتم قضیه افکار نگاه نکردم حتی اندیشه بشری رو به همین انگیزه‌های شرعی شده برمی‌گردوند یعنی مثلا فرض ما معتقد هستیم که قانون عینیت این که قانون عینیت یک حقیقت داره ما چند مورد مثلا پس کنیم آب و دورش اینو آتش شدیم داغ شد مثلا یخ و دورش آب این, این سر شد چند مورد رو دیدید این چند مورد منشه شده که ما یه قانون به نام عینیت بشه احتیاص پیدا بکنه برایه که چیزی دیو اینکلود یعنی دقیقا این رو هم باز تفسیر بندگای شده, شده می‌کنه لغت هم که از داریم ادیشون و در روزهای ما هم آمده این تفکر که تفصیل بشه به انگیزهای شدیف شده انگیزهای شدیف رو رز کردیم اولین با حالا هر کدوم بودن در نصف یک سگ آزمایشه کردن اون که رفت قراردن بین ذهن زدن و هر فضایی که برای حیوان این تو خب هم تفصیل کردن پدیده هایی که در زندگی بشر هست یک پدیده ای که در این یه حیوان به طور مطلب وجود داره به نظرم یه تفسیر ناقضیه خود این تفسیر ناقض یه تفسیر غیر صحیحی سابقا هم از کردن کرا را را را را را را در دنیای قبل بعد از نظر تکامل که داروین و برقا دیگه روشتیات کار کردن تقریبا ارتکاز متعارف دنیای قبل یا دانشگوها و رنساتی چون حدود 23 ساله این گجکشه یه ارتقا متعارفی متعارفی برای خودی که انسان استمرار همون حیوان این خودش یه است و در خیلی از مسائلی که الان در دنیای خارج میاد انسان باید توجه بکنه در حقیقت نظریه علوم طبیعی که انسان رو با حیوان یکی میدونه این منشأ شده در خیلی از جاهای دیدم به این دیدگاه نگاه بکن تو مسائل اخلاق مثلا مثلا انگیزش یعنی زبان و اخلاق و فکر و همه رو با یک پدیده ای که در حیوانات هست مداری و این یکی از مقاطع اساسی اشتباه دران در دنیا در باشه و گروه هستن که ما هم باش مشکل داریم یعنی به خلاف تصور و راژه به موسیقیان که انسان کلن جداست و خصدت های جدایی داره اونها تأثیرشون این طوریه لذا به نظر ما این انگیزاری شرطی شده طبیعتی درسته در حیوان وجود داره در انسان هم مختصای این که یک طبع حیوانی داره وجود داره اما این کافی نیست برای تفسیر رفت چه برای تفسیر اخلاق شده و تفسیر فکر و اندیشه کلا نیروی داره یعنی اشکال اساسی داره و ها تدار تفسیر دیگری که شده مثلا تضای معانی تضای معانی یک امر واقعی است و اختیاری ما نیست ما وقتی بخوام یادداري بکنيم یه موضوع یادداري میگم یه موضوع دیگه هم برداشت خواهد در که ما در وقت تدایینی نیست همخوانی نیست فراخوانی نه همخوانی یعنی اون بخش ارادی انسان به جای خودش محدود لذا به ذهن ما میرسه این مجموعی تفاصیلی که گفته شده ممکن است برای یک مرحله از زندگی انسان مؤثر باشه چون بچه اولی تو مخاطب یاد ممکن است به نوع اندیای شده این امکان داره اینه ما منطق نیستیم اما این کافی نیست برای اینکه ما بعض رو که یک پدیده از زندگی بشر و وابستگی داره لغت رو که در زندگی بشر تأثیر کلی داره اینقدر تأثیر این لغت زیاده که ادری اصلا فکر رو همون لغت میزونم اندیشه رو همون لغت میزونم اینقدر این تاثیر هست و بدون شک لغت و ما علق و به مثل خط و این ها اساس تمدن و فرهنگ رشد که حالا یک خون از این طریق طولانیه لذاب به ذهن یاد که این تفسیرهای این طوری پرسیر مثلا اینایی که عوامل طبیعی رو گرفتن درست؟ بلا اشغال بعضی از عوامل طبیعی در انسان تفسیر گذاشته اینجا بحثش نیست اما اینکه انسان فقط محدود بشه به عوامل طبیعی خودش نتونه تفسیر گیری کنه این محده اشغاله یعنی اینکه ایده از عوامل تو گفته شده که از الفاظ شد در عصر حاکی از مثلا صدای اون واقعیت بوده مثلا فرض هوا رو اون که در هوا کوچیکه این هوای مقول صدا تامین یافته از همون صدایش تو خود هوا داشت اینا امکان داره اینا نمیشه انکار کرد اینکه عوامل طبیعی مجموعه عوامل طبیعی وادار کرده که انسان رو یعنی وجود داشته که انسان خاصی برای الفاطمیه اینا این امکان نیست نمیشه امکانش اما اینکه علامتاً تبیین به تنهایی کافی باشه بدون که انسان برای خودش اراده ای داشته باشه این رو جنبه که محله اشاله در حقیقت این تفسیره و لذا به ذهن ما میاد که این مجموعه تفاسیری که گفته شده شاید بعضیاش در بعضی از جهات تفسیر داشته باشه میتونه قبول بکنه انصافاً اما این کافی نیست یعنی اون نشیده که انسان در نفس داره و تصمیمی که در الفاظ داره جلوه عقب بردن و سما کردن و آزادی اراده‌ای که داره با این مبانی که گفته شده جوز درمیاد البته خب عوامل طبیعی هست مسئله یک مقداریش انگیزش شرطی شده در این مرحله از زندگی ما هست در بعضی از, از موارد تو حدی شبیه تداوی معانی اما اینها کافی نیست اون مجموعه‌ای که بشر مثلا این حقوقیت ارتبالی شاید مثلا در ذهن افرادی که همون مثالی که دیدوی زدن گفت بیهده هاسی گفتن چرا اسم این حیوان خوب بودتن مثلا غربیز گفت و این که خیلی کسیده مثلا چون تو اما این مثلت رو به شوق رریز مثلا بدن به یک آلم بدن قطعا اینجور تصور نمی کنه اسمشو خوب بودتون که خیلی کسیده یعنی این حبوریت اعتباری در یک مراقل فکری بشر هست میشه قبول بکنیم این برای بعض از افراد بشر این حالت هست اما این که این واقعا تفسیر حدیری تمام ورز باشه به ذهن نمیان ازاد به ذهن ما میاد که مجموعه این عوامل تأثیر داره و یک مقدار هم عوامل لیوی داره اینی که مرمون نایمی ورز رو به خدا نسبت میده این هم طرفتی درسته یعنی جهاز قیدی هم در وجود انسان هست که ما اطلاعی بر حقیقت اون جهاز قیدی هم نداریم مجموعه این عوامه ولذا باز هم با تمام اینها اختیار انسان و اراده انسان و جا به الفاظ و ایجاز رابطه در این الفاظ باز در انسان محکوزه یعنی که وقتی مجموعه اینها رو ما در نظر گرفتیم همون ای شد که اسمش رو چیم اختصاص به اعتباری این در نهایت و در نتیجه حالا این اختصاص از راهای متعدد پیدا میشه با که انسان در او سیطره داره اینطور نیست که ما در مقابل لفظ و افرادی معانی افرادی دست یافته باشیم در اون سیطره دل البته این حالا تخصیص و لفظ این اختیار کردن مثلا یکی سیامیه لحظ لفظو به ازای فلان معنا قرار بدن و این مثلا در کجای تاریخ بوده این چه شبهه داره این روشن نیسته تخصیصم باشه که مشروعه اما از اون برای هم این کار اختصاص و این کار رابطه بسیار بسیار مشکله همون علم آدمت اصمان بیشتر منشه علم آدمت اصمان در غیر نایین هم آمده اصمان بیشتر پس بنابراین خلاصه بخصینه نظر ما و یک رابطه ایست به این لفظ و معنی این رابطه به شرایط مختلفی پیدا شده در اون نتیجه نهاییش بشر ها حاکنه بر اون رابطه است. این رابطه را رو ازش تعبیر به اختصاص می‌کنیم، به یک نوع رابطه اعتباری از بسه مناشع مختلف داره در خود زندگی بشر. از لحظه تولد تا لحظه کمال عقلانیش گروز ها و زخور های مختلفی داره به این افراد در ظهورها و بروزهای مختلف داره اینا هر بجوی خودش محفوظه یعنی اون مجموعه اوامل که اگر بخواییم و بالاخره وضع و لغت در سرش انسانی یا در طبیعت انسانیه به اثر فوق العاده بزرگی داره اینی که مثلا میبینیم بکیم لغت عبادت فکره یعنی اینقدر تأثیل داشته که حیفت انسانی رو به لغت لیکن با تعمل در آیات شاید بشه فهمید که این یک اصلات الهی بالایی است و ناچیز باز هم در ذات انسان قرار شده. در این آیه مبارکه سوره الرحمن خلقت الانسان علمه بیان چه عجیب تعبیر قرآنی صفه رحمانیت رو ذکر کرده و باز بحث تفسیری میخواد بشیم که خاص خودشه اون وقت از عجایب این آیه مبارکه خلقت انسان رو با تعلیم بیان مغارب زیده کرده این خیلی توجه بکنه خیلی عجیبه در کتب بلاغت اگه باشه بعد در حقیقت بلاغت همون فصل و هم. یعنی هیچ نحری از عداسه فصل و وصل و شارع در اینجا به کار نبوده یعنی ار رحمان خلقه بیان حتی الله هم به کار نبوده خیلی عجیبه ما این که در ما آیه مبارکه را فا فا در حداد ناشه انا بوله کن فا یکون فا که در ذرا میکنه در ذرا میکنه به کار رو شده. تو اونجا میگن فا در, در مقام تعبیر دلاله به کن یکون محقق میگنه اونجا فا به کار رو دشده خیلی عجب در آیه مبارکه خلرکم سم بصورکم که خیلی هم خلاف ظاهرم یا آیه مبارکه از آیات م انتا بعد از لغمی گفتن سور هکم خون چون ظاهرش که انسان تصویر میشه خدا خرم او کرد او تلا میگه اما ظاهر آیه مورد که اینطور می خلا هکم سن رسن من لبه سن ما آورده که در این هم هست من معلوم نیست گفته شده معلوم حالا بحثه تفسیر نشه من بقید در این توجه از اجایب آیات الهیه خلق, خلق الانسان علم های بیان حتی واب هم کار بوده نشده حالا اینا توضیح ها تشکی منشون نمیحوازیم شون اصلا محاسم به آن تذکر باشه در حد تذکر توضیح ایجرد دیگه و کلمه تعلیم و بیان به نظر ما بیان وقتی توضیح دادیم در لغت عرب یکی از خصایص نسبتا خوب لغت عرب انتقال از محسوس به معقول خیلی واضحه این خیلی نکته خوبیه است مثلا اصلا عقل از اقال شطور گرفتن یا قصد که که چیز از قصد بریدن که انما انسان جدا که میکنه جدا کردن بریدن و قصد داره شید این قصد به این عنوان یقین و معنی ثبته است یغنه معنی ثبته ال اخریان من میخوام وارد اون کلمه بیان به معنای جدالیه اگر چیزی مثلا عبان راسته و با شمکیز را سرش جدا کرد معنی دوری و جدایی و فراق بانه سعال به قلب یوم مفتوی و مفتوی, مفتوی سعال از من مثلا فراغ سعال این قطعه معروفه بانه سعال قطعه معروف که در مذر بیغمبر اکرم اولش تشکیر بعد مذر بیغمبر به خودش معنی جداییه در وقت عرب این تعبیر رو که انسان این تعبیر رو که مثلا ما بخریم حق رو بشناسیم مثلا شبهه در بیا شبهه از شباهته چرا چون یک باطل میدیم نکته فیلسوفانه شدیه حق میشه سر شبهه تسمیه شبهه به خاطر شباهتی که باطل با حق پیدا می‌کنه در مقابل شبهه بیانی که جدا می‌کنه حق رو از باطل جدا می‌کنه این علم و بیان به نظر من یک معنای عام میه. شامل لغت میشه شامل سخص میشه شامل... این یه قسمت های ادرازی شامل علم میشه شامل فلسفه میشه شامل ارفان میشه شامل تعقل میشه اون نیرویی که در انسان بتونه حق رو از باطل جدا بکنه یکیشم لفظه نه اینکه لغت فکر باشه لغت و فکر و علم و فلسفه و عرفان و شعود هر هرچی که از این مقرول و تعقل اینها تماما بیانه بیان به بی این معنی. یعنی انسان توسط اینها جدا میکنه حق و از باخل جدا میشه. این کله به بیان که منوی قبه اقاب بلا بیان آمده این نکته اساسیش در حقیقت اینه که خود کلمه بیان اون کاربرد اصلیش اینه علمه بیان به بی این معنی ولذا انصافشان هم همینطوره یعنی انصاف قضیه این یکی از خصلت های باعث لاغوریسم راز گونه طبیعت از در وجود انسان که در حیوانات دیگه نیست این که ما بیان یک تفسیر رو که برای عملی رو با سگ انجام بدن اون رو در انسان بکشیم دروقت خیلی خلاف ظاهر یعنی من که خلاف ظاهر آیات این که جای خودش اصلا خلاف ظاهر علم انکاری با آیات هم درشته بشی با تکوین انسان و با سرشت انسان نمی‌شه این اومده مطالبی بود که گفته شد و به نظر ما اتخاذ مبنا در اینجا توی بحث زواهر تأثیر میذاره یعنی به عبارت اخراج اونی که در اتخاذ علما تا حالا بوده یک نوع رابطه ما بین و معنا رو در کردن حالا یا رابطه رو گرفتن یا رابطه رو اعتباری گرفتن چون در تفسیرشن گفتن تحسیص و لحظه رابطه رو اعتباری گرفتن این،, این طوری که ما اینجا بحث میکنیم این خلاف اون ارتکازه هامونیست که علما در طول تاریخ داشتن یکی از نکاتی که خلاف این ارتکازه کتب لغت هست چون در هر زبانی در ما صده ها چفاق ما بران کتاب لغت داریم این کتاب لغت مبنای بر همینی دیگه اگر رابطه بین این و معنی نباشه کتب لغت لغه اساسی نداره چون کتب چون شنه یعنی علما در طول تاریخ رو ارتکاز خودشون این رو فهمیدن که حالا بر اساس مختلف حالا غیبی باشه الهی باشه یه مقداش انگیزهای شرطی شده باشه یه مقداش باشه یه مقداش عوامل طبیعی باشه یه مقداش تاظرداری با خود بدن باشه با مجموعه این عوامل این لفظ در این زمان رابطه با این معنا پیدا کرده این کتاب لغت رو برنام نهار داشتن حسولا شناخت ما در مرحله مدلول لغت شما شناس ما کتب لغت کتب لغت در همین اساس تدین شدن در تمام لغت ها یعنی این ارتکاز بشر بوده که یک رابطه یه هست کتب لغت متعرض این رابطه شدن لذاب نظر ما نفی رابطه بسیار بسیار, بسیار بعیده چون علیه گفت که این کتابی هست نام بررسی زبان حالا ادعا میکرد که در سطح دانشوان کنده میشه ایشون الان برای اینکه روچن بشه نحوه کاری که ما انجام دادیم در این کتاب و این شاپه سروه میشنم بشنه از صفحه به اصطلاح یک فصل اولش منشعه های زبان همین شبیه بحثی که ما الان محضوع است ما خواهم یه محایثهی بشه با کاری که الان میگه در دانشگاه هم تدریس میشه این فصلی رو داره به نام منشعه های زبان مناشهی رو که ایشون در این کتاب ذکر کرده از این ترجمه به فارسی. اولش منشأ علاقی است که از عبارتی رو هم از انجیل نهار نکنه این برد در میان ادری از رغبین ما هم هست و در اصولین متأخر ما مرموم نایمین مخوام مقایسه بشه با کاری کلا بعد دوم منشأ اصدای طبیعی این منشه اصدای طبیعی همونی بود که ما از این کردیم یا به علت تامه یا به عنوان مختزی مثلا انسان صداهای بشه از این صداهای حقایت کرد بعد اینها توسعه بیدا که از ای این شبیه شده این منشأ صدای قبیه ما تقسیم شدیم به دو مثلک علت تامه و مختزی منشأ سازگاری جسمانی منشأی روش نمونده البته منشأ سازگاری جسمانی بیشتر زنه بروز صداست که من دیدم یادآوری باشه توضیح دادم که گفته شده در تفسیر انسان حیوان ناپیر چون وقتی دهان انسان بسته میشه فاصله بین زبان و کام ایجاد میشه این فاصله ایجاد اسوات میکنه که ما اصطلاحا مخارج حروف میگیم البته ایشون در سازگاری جسمانی دندان ها مقایسه کرده دندان های انسان با بعضی حیوانات مثلا با اگه با میمونشان میمون و شمپاژه مثلا ها دهان هنجره و هر این مجموعه این عوامل رو این عوامل تأثیری در خود زبان نداره اما برای ظهور مصادر حروف و, و مخارج حروف درس این منشعی ای که ایشون گفت بعد از اون وارد منشأ ژنتیکی عنوان رو قرار داره به عنوان منشأ ژنتیکی در خود این کتاب وقت در تفسیرش میتونید بیم در این به اصطلاح در که یک منشه به اصطلاح ظاهری برای بشر ذکر میکنه بعد از این که میگه مثلا بچه چیجوری بوده هنگره چیجوری بوده مغزش چیجوری بوده بعد میگه این مجموعیه تماما غیر ارادی این غیر ارادیه همون خصلت هایی که در حیوان هم وجود داره از تکامل و پیچیدیگی زبان پودر باعث شده تا برشی از محققان دنبال چیزی قوی کرد وقت از, از سازگاری های کوچک جسمانی انسان با عنوان منشعه زبان بگردن یعنی این سازگاری ها چه به تأبیر ما سازگاری های محیط هم هست جسمانی انسان رو گرفت. حتی کودکانی یعنی این نکته خود در قبل کنی یه حتی کودکانی که ناشنوا به دنیا می آیند و گفتار را یاد نگرفتن در همان عوائه و با قرار گرفتن در شرایط مناسب کاربران مسلط زبان اشاره میشن با و زبان اشاره این زبان اشاره این در تفسیر قرآنی کلان از قدیل بیانشون بیان بیانه معنی عام می زبان اشاره را می گیره اصلا بالاتره دید. چون بیان رو ما به علم هم تفسیر کردیم حالا من اوارسی شون بخونم کاربران مسللات زبان به نظر می این نشان می که فرزندان انسان، اگر می از هیجان جلو که به عجیبی آورده عجیب است. از نظریه داروین، ترکیب زمینی رو نظریه داروین جا در نظر تبیعی تفسیرهای برای را مناسب نظریه داروین نیست. به نظر می این نشان می که فرزندان انسان با استعداد خاص، اوبراکن با استعداد خاص برای یادگیری زبان به دنیا می آید یعنی می توانید. این بارید انسان قرار دارید این باید جدا با خود. این تمام اون عوامل محیطی و سازگاری جسمانی و سازگاری محیط و نمثلای اصواس و تمام اینها ها رو هم دارید یک چیزی دیگری در قبولی تبدیلیشون که انسان وجود داره حالا این تبدیل رو با اون تبدیل قرآنی خلق علی انسان حالا که در اونجا، این به جایی که کلمه جنفیک باشه که انما این قدرت بیان در خلقت انسانه از فطری بالاتر، اصلا از این آیه مبارکه ما شد از فطری اصلا وجود انسانی با بیان که این هم که ایشون نوشته منشه یا یادگیری طبق این تصالبوری که ما هم تصفیل کردیم فقط یادگیری نیست علم هست. هست این طور نیست که اگر این خیلی ز... زریع نکشه. اینطور نیست که اگر بچه ناشناب به دنیا آمد 10 زبان اشاره یاد میگیره. ببینید شما الان ما الان در کارای آفریقا مثلا مناسری داریم که ممکن ضرمثل اه هجر زندگی میکرده. مثلا 10 سالیشون سح هجره اما الان حتی کامپیوتر اونجا رواش بدهیم. یعنی اون قدرت ژنتیک به تغییر ایشان که در انسان هست فقط زبان نیست علمم همین ساله تحق هم میطوره فر زبان هم میطوره ان این یک خصصت خاص خیلی برای ما این من امروز مختلفی نخوندم بردیش نخوندم چون خیلی محل کار ما نیست معلوم میشه که میخواد این توجه رو پیدا بکنم بعدا در میان نوشتای خودش ورداشت تحریجی خودش یه مقداری از مسادسگی چون ما مشکل بزرگ ما هست که ما در فرهنگ خودمون در ایران در این منطقه خیلی به ترجمه وابسته هستیم همیشه اینطور بوده در به قدیم فرده. ترتفیه ایندی تب بریندی یونانی ترجمه شد در دنیای اسلام وارد شد در بیهاتون خیلی کار کردن آدرس هایی که ایشون داده اینجا به نظر من شاید اصلا به فارسی چاپ نشده باشه نمیدونم اسمایی که ایشون روش خیلی نظر من خیلی. این استعداد خوبیه قسم و هیچ جانداردی یعنی آن را ندارند. این سبسید منشعه جنویتی این همون مبنی باید شما عرض کردید باید این منشه جنتیک رو ایشان نیامد تا آخر پیجیری بکنن اگر تا آخر پیجیری میکنن به همون نظریه ترابطه اعتباری میرسید این خصیلت جنتیک آیا به نحن جبری و ار... غیر ارادی در اینسان تأثیر میکنه یا به نحن ارادی و همچنین وابسته به گونه زبان خاص از زبان نیست این وابسته به یه گونه خاص از زبان چرا چون مسئله مسئله بیانه نه زبان زبان و لغت یکی از مظاهر بیانه نه تمام بیانه دقیق فرمونی؟ آیا امکان دارد که این استعداد زبانی به صورت جنیتیکی در نوزاد انسان به ودیعه گذاشته شده باشه؟ بله بعدیشون مثل به نظر میلتر ترضیه ازادی بودن زبان این ذاتی بودن رو روی جا بیدیم من رو درسته این از کدم این لازم نیست به ذاتی بودن حل بشه با عنوان راه حلی برای معنوای منشأ زبان به چیزی در جنیتی که انسان احتمالا یک جهش مهم به عنوان منشأ زبان اشاره داشت یعنی باز تو ذهنیتش اینه که انسان استمرار حیوان، اگر استمرار حیوانه این خاطر جنگی جد کجور برای شد و مر راهنش رو با اون مقدمات ذهنی خودشون از یک نوع جهش یک جهش در زندگی انسان پیدا شد که منشأ شد این درکیتش بشه. اگه این حرفا اگر به خود آیات مرانی مراجعه میکنن خیلی رو اثر مطلب رو درک میکنن. این وارد بحث نشم این مناشعی رو که ایشون نوشته با توضیحاتی که ما عرض کردیم علاوه بر که انسانها خیلی کمه و توضیحاتی که ما کردیم خیلی واضحتر و بود. در این مسئله ای که اینجا الان محل کلام ندخم یکی از مسادر بیانانه که خودش یکی از مسادرش <تصفيق> یکیش هم اونه یکیش هم علمه قدرت علمیش <تصفيق> شما هم بیان غرم میکنه چون شما با علم نشون دید که این علت هست یا نیست این, این طور اونم بیان میشه این راجع به این مطلب پس به نظر میرسته که ما یک نوع تراوض رو قبول بکنیم خلافند به مرحوم استاد با من سلک این مسئله رو البته تا اونجایی که من دیدم حالا جای مؤخر روز برای تو در خلال اون ریستور که در بیاد به نظر من خیلی از اونها این مبنای تعهد رو حالا به یک نحوه مختلفی قبول کرده باشند. این در مباحث بعدی متعرض راجبه بحث اول ما که دلالت تکوّری به تعبیر بود ای بابا وقتمون شد دلالت دوم ایشان دلالت به اراده استعمالی ای ان ای دلالت لفظ الا ان المتکلم اراد شفیه معاد المعناتی و استعمله فی اراده ها در و هاذه الدلالت سو همان در قم دلالت, به دلالت و اندنا به دلالت وضعیه چون ایشون معتقدان دلالت وضعیه همین دلالت تصریفیه تا تصوور دلالت اینه در تصوور این مطلب ایشان مطلب درستی است که فردا ایشون رحماتشون من واسه الله هم